بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرخ الأنبياء والسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين آخرين حديث وداف تربحت وزدري حديث نعيم المجمر نعيم المجمر اقرأ يا عنا عن نعيم المجمر عن أبي حريبة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم القوات إنهم متيقعون يوم القيامة قررا محدجين من آثار الجذب، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته، فليفعل. وفي رواية للمسلم رأيت أبا هريرة أنك توضع، توضع، فغسل، فشفف، فشفيده، فشفيده، حتى كان يبلول من كان من ثم غفر الجليل حتى رفع إلى الس إلى السفين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن قمة يدعون إلى يوم إن قمة يدعون يوم قيامة غورا محددين من آثار البدوث فمن استطاع منكم أن يفيل مرده وتعبته وتحجيله فليبعه وبلغ للمسلم سمعت قليلا من الله عليه وسلم يقول تبلغ الحرية للمؤمن حيث يبلغ الوضوء خب یہ نعيم المجبر نعيم قبيك از طابعين بزرگ که لقب مجمرش خاطر تج... کار تجمیرشه، تجمیر اصل جمع زغاله، لیکن به فعل بخور کردن مسجد تجمیر گفته میشه، پس این لقب به خاطر اینکه این, این شخص مسجد را بخور میکرده با بخور اون که که روی اظهار گذاشت نمیشه تا بگیره پس این لقب نعیم المجدر رضی الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انه قال ان امتي يدعون يوم القيامه غرو محجلین من آثار الوضوء خب ما گفتیم قبلا اینکه ما حدیث را از ناز فقیش بر بکنیم اولی لفتی ما در این حدیث داریم رسول الله صلی اللہ علیه و سلم بیفرمایند این امتی این امتی کلمه امه امه در لغت به زیادی میاد پنج تا معنی پنج تا معنی داره حالا در قرآن و سنت امده اولا به معنای جماعت به معنی جماعتی یک تفضیی از مردم امتم من الناس یسقون بحث موسیٰ علیه سلام الله. که جماعت از ما تو میگه دیدم که خب آب میخرن آب میگوشن امه تن من این به معنای جماعت دوو من به معنای اطباء انبیاء حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که میفرماید وایت النبی و لیس معه احد ابن ابی رافع النبی صلی الله علیه و سلم و کذا و کذا تا رایت امه او ثواد و عظم و تا آخرش که در دنبال حدیث میگه که به من گفته شد این امتتن این اینها امت تو هستن یک ثواد بزرگ دیدم معنای اول حدیثی واضح است یا دیدم یک نفر هم راشد دو نفر هم راشد یا برای دیدم هیچ کس هم راشد یک بزرگ بزرگی دیدم فکر کردم که امت منم گفتن که امت بوساد تا این که یک سوادت بزرگ دیگری دیدم که گفتن این امتت هست فس اتباع انبیاء اونهایی که پیروه یک پیامبر خاصی بودن به اون اتباع اون پیامبر میگن امت امت محمد هر کسی که تابع رسول الله صلی اللہ علیه و سلم فس اینجا معنیش هم همینه اونهایی که تابع امت محمد صلی اللہ علیه و سلم سبومن از جمعه معنی امت یک شخص جامع یک شخص یک شخصی که تمامی خصال نیک و خیر رو داشته باشه ابراهیم كان ان ابراهیم کان امه قال فی الله ابراهیم امه ابراهیم که چند شخصه یک شخص لیکن بسیار اتفاق خیری به خاطر اینکه در مقابل یک تن در مقابل امتهای شده چیه؟ امته از جمله معانی امت دین و ملت دین و ملت, دین ملت به معنای دین امت معنای دین مثل فرمودی خدا انا وجدنا آبائنا على امت یعنی على دین ما پدران من رو بر یک دینی دیدیم پنجمین معناش به معنای زمان و وقت امت معنای زمان و وقت الى امت معدوده الى امت معدوده تو زمان معینی یک وقت معدود و مشخصی بس این پنشتا معنی امت که معنی که ما از اجتفاده می در این حدیث به معنای اتباع پیانبرانه و اونهایی که تیرو و رهرو محمد صلی الله علیه و سلم بودند پس امت محمد و و پیروان محمد صلی الله علیه و سلم روز قیامت خواهند و من خواهند خواهند و من می آید منم این درست دیگه حواسم سر جش نیست حالا بعد از شروع، حالا نوستش هم برام سخته بی که این درس، حالا با این خستگی که شروع کردیم با این خستگی، همه شد با کمونش میکنیم و از خداوند هم آونو کمک میخواهیم استعانت منطقت و خداونده خب معانی از جمعه معانی که این حدیث داریم این امتی و دعوان ایام القیامه غرن غر یا غره سفیدی هست در پیشانی افت در پیشانی افت و پیشانی در جلوش، ش جلوه سرش اون قسمتی که سفید هست بیگن غر یا غره محجنی خود تحجیل مقصدش پاها و دست پاهای اون حیوان که سفیده خوصا اص یعنی یکی از نشانه هایی که در حدیث اومده مدح اص در اون اصفایی کلو در اون سفیامت من هند بحث پاهای سفیدشونه پاهای دست های سفید است. و مقصد از غره در اینجا که پیشانی هست مثلاش اون سفیدی که در اثر و در اضای وضوع حاصل شده میگه که روز قیامت من امتم را یا امتم به این خانده خوانده میشوند با پیشانی ها و پاهای سفید از چی؟ از آثار وضوع وضوع طرف شده که چی؟ که پیشانیش سفید بشه و پاهاشون سفید میشه اون آثار بوزویی که اون جاهایی که آب بوزو بهش رسیده هست. خب. گفته یه یا جمله یکیست در آخر این حدیث اومده. فمن اصطفا من ان این یطیل غروت و فلیفت. ابن حجر را امچنین البانی غیر از محدثی بر این اعتقادم. این گفته در حدیث ادراج شده. ادراج ما فقط جداً توضیح داده باشه که یک حرفی راوی بیاد از خودش در روایت اضافه بکنه گفتیم شاید اول روایت باشه یا وسط روایت باشه یا آخر روایت باشه. این از جمله روایت هست که خود ابوهره رضی الله عنه در آخر در آخر روایت فرم داد: فمن استطاع منكم ان يكل طعامه فليفعل. خاطر همونی که بعد خودش میاد وزو میگیره و دستش رو تا کتبش میشوره و پاهاش تا ساختش میشوره. آه... پس این حرف حرف خودشه. خودسن که با فرالش رو کرده. چون رسول الله صلی الله علیه و ما در هیچ حدیثی نداری که دستاش تا اینجا ششته باشه یا پاهاش تا ساخت پاش ششته باشه. این از اشترهاد خودشه. و این راوی، این قسمت از حدیث که اضافه کرده از اشتباهات راوی هست که ما مشخص از سخن‌های رسول الله علیه و آله منسب است سخن‌های خود الله عنه از الفاظی که نیاز داریم شرحش رسول الله الله علیه و تسلم من آثار الوضوء من آثار الوضوء وضوء چاره نمیگیم وضو، چرا گفتیم در اینجا وضو؟ ما گفتیم وضو، به چی میشه؟ به آب. و وضو به به چرا ما یه تفسیر که اینجا وضو هن و که وضو، لیکن از اون باضن وضو. همون وضو. که فعلید که ما مسلمان ها انجام میدیم و خود این وضوع هرچند که در بحث محمدتن در بحث تورات یا این دیل وقتی می میخونیم خب ببینید که مثلا خیلی از امتای پیشین وضوع هم داشتن مثلا در احادیس هم بعضی جهان اومده که مثلا ساره وضوع گرفته ولی که ساره از امت محمد صلی الله علیه و سلم که نیست همسر ابراهیم از امت محمد و الله علیه و سلم نیست ولی که فالو چهره چطور بوده بوده صورت ندیده ما نمی‌بینیم لیکن برای ما اون چیزی که مطرح است اینی که این وضو وضو خاص امت محمد صلی الله علیه و سنت بان صورت و ده و باها شسته میشه و بدن متن میشه این چیزی که هست در نزد ما مطرح اما با فتح وضو مقصدش آثار وجود آثار اون آبی که به اون اعضا برخورد کرده خب فمن استطاع موقع شرحش داری و بحث ادراجشم گفتیم میمونه رایت بابرره توظه فقط لباشه و یدهی حتا کرده یبلغ المنکبه منکب اشانه من ها من میگن در لغت عربی منکب نیه من که دیدن بابرر رضی اللہ عنه وزو گرفتن سورة جوشش است. بعد ازش جوشش تا اینکه دیدم به شانه هاش رفیق. بعد اینکه پاهاش جوشش، تو مقطع روزی حتی رفعت ساقه. دیدم که بعد پاهاش جوش جوش تا ساقش. میگه بعد ابو هریره دلایل آن فرموده است. مگه وقتی ما می‌پیوند، این امتی جدعون یوم القیام سبب رحم حجیلی من اثر الوثوق. بعدم اینجا فرماید صاعم ایم که یقیل غضت و خلیج علی. و در لفظی در نظر مسلم سمعتو خلیلی سمعتو خلیلی صلی اللہ علیه و سمیه اقول تبلغ الحلیتو من المؤمن حيث یبلغ الودو میهی که خلیلم خلیلم خلیل نظر خلیل از حبیب بالاتره از حبیب بالاتره حبیب یا صدیق بکتی از کلا دوست انسان باشه لیکن بالاتر این دوستی اینکه اون شخص در قلب انسان نفوذ بکنه که تمامی حرکاتش در نظر ما پسندیده باشه انسان بخواد هر کاری که اون شخص انجام میده انجام بده هر کاری که میکنه انجام بده و هر کاری که بهش بگه مثلا انجام بده در قلبش نفوذ بکنه این نهایت محبت است نهایت محبت است که دیگه نه به اون طرف نگه نهایت محبت میگه که سمعت خليني صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحليه، خود کلمه حلية از کلمه حلية حلية زيوارات زنا و كل زيوارات بشمال حلية در اینجا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا من تبلوا الحلية من المؤمن حليه الحليه المؤمن حيث يبلغ الوضوء ولا مدار إلا لفظ خلي دتان يكي يكينك إن خلي مختدش إن زيار الله زيارته بهشتية به خاطر روایتی که در نزد امام ابن حبان اومده در صحیحش که مقصد اصلی فولی اهل بهشت بهشتیانه این گفتی اول و بعده گفتن احتمال داره که این اشخاص از زیورات بهشتیان در اون قسمت هایی که با اون وضو گرفتند یا شستنش در وضو تا آنجایی که شستن در اون قسمت ها, در اون قسمت ها از زیور آلات بهشتیان پوشانده بشه در روز قیامت پس مؤمن در روز قیامت یکی از صفاتی که داره اینه که رسول الله صلی الله علیه و سلم آنها را با آثار وضو و با زیورالات بهشدیان آنها را می و گفتیم یا اینکه این, این زیورالات پوششش در جاهای معموطن وضوع و یا اینکه مطلقا اون شعر از دیواره به اشتیان می‌پوشه ولی کلا اون چیزی که ماده حدیث بلند گفته قبل الیته من المؤمن حیث یبلغ الوضوء فرض جای که وضو گرفته باشه در اونجا دیواره رشدانده میشه حالا این لب اینجا مشکل در اینجاست که ابو بکر رضی الله این اینجوری اجتهاد میکنه که که مستحب مادامی که تا اونجایی که جاداره شسته بشه زیورات کشانده میشه پس در در تیجه ساق هم شسته بشه بازیوها هم شسته بشه تا شانه ها آیا این فهم از زبوره و از غلاعه درسته یا نه خیل. دو تا قابل جمهور گفتند که شستن بازیوها و شستن ساقها مستحب نیست مالک در روایتی مالک و احمد هم همچین در روایتی گفتن که نه مستحب طبق فهمه ابو برره رضی الله عنی بازی ها هم شسته بشه و پاها هم تا ساق شسته بشه دیکه چرا مرسی جمهور رو ترجه که مستحب نیست بازی ها و تاق شسته بشه اولا مجاوزت حد شرعی نیاز به دلیل داره هر چیزی در شر حد حدی داره حدودی داره, حد داره. خداوند در قرآن میگه که چی؟ و این دیگه کمایش الا المراقب خداوند ده صمره را گذشته و طه ها ال کعبه او ها تو کعب شر برای اعضای وجود حد مشخص کرده اگر مقصد از این حد بالاتر بود رسول الله صلی الله علیه و سلم حدا قل یک بار این کارو انجام میدادند. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم در هیچ حدیث اینجینی فعلا انجام ندادند. اینجا فعلا کیه؟ ابو غره. دو بومن. فمن استفا عمینکو من یطیل غررته گفته کیه؟ گفته ابو غره هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم نگفتم کسی اگر بتونه؟ پس غررشو تحجیدش زیاد بکنه سبو من میفه من استطاع منکم ان یطیل غررته این کسی یا بتونه غررشو غررشو بیابداید این اون سفید روش رو بیابداید اگر دست بود خب دست میشه تا اینجا شست داشانه ولی صورت چطور اطاله شمیتونی چطور پیشرفتش میدی می‌دی دستش پیش راست ده این انطاشانه اوف صورت تا کجا از اینجا به سمت راست از اینجا به گردن میرسه در هر دو حالت از دست از صورت فاصله شد دست اگر از مرکز بیشتر شستی هنوز دست است هنوز همینطور ولی صورت اما استطاع علمكم ان يضل البركه پس آنچه که از این حدیث استنباط میشه مقصدش نه اقاله نه طولانی کردن و شستن زیاده از حد ازاد بلکه مقصدش زیاد شستن و زیاد وضوع گرفتن که انسان برای نمازی برای هر نمازی مثلا فرض تشدید وضوع بکنه حالا میاد من حادثی که اومده در باب اینکه چه جاهایی مستحبه وجود گرفته بشه من احادیثی که در این زمینه به اشاره میکنه اولا مطلقاً برای ذکر خدا جوهری که مستحب برایش وجود گرفته بشه برای ذکر خدا حدیث در النذر امام ابو داود حدیث شماره 17 در نذر و داود که میگوید عن المهاجر ابن قلف انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتی توظا ثم اعتذر الیه فقال انی کرهت ان اذكر الله الا على طهر او قال على طهاره میگه در نزد رسول الله صلی الله علیه و آله حضرت حاجتت میگفت جوابم نداد تا اینکه وضو گرفت از خواهی کرد و گفت که من دوست داشتم که ذکر خدا بگم در صورتی که چیزی روی طهارت نیستم طهارت ندارم بس برای ذکر خدا مستحب که انسان وضو بگیره دستش رو دست نماز بگیره بعد ذکر خدا بگه همچنین از جمع که مستحب موضوع گرفته بشه برای دعا کردنه برای دعا کردنه دلیل حدیث بن برن از من بخاری از ابو موسا رفیقش که رفیقش ابو معمر به شهادت بیرسه قبل ده که به شهادت بیرسه به رسم که به نظر رسول الله اومدید بیشکره برام دعا بکن میگه که در نزد رسول, رسول الله صلی الله علیه و بخبرنا ابی عامر وقال قل لي فجاء بما ان فتوضا وثم رفع بعد من به خبر عامر صحابه رسول الله صلی الله علیه و الیهم رسولو گفتن چی روز ابوزید برام بیاری تو دعا کردن و گفت اللهم صل ثمّي كف ورأيت البياضة إبتديت ثم قال <سؤال> الله مَجَّعلُهُ يومَ القيامة فرضا كثيراً من قلبه من الناس يجد تشف جيب ولا بركة تفيزيء بالعلاج بيد الشخص. أيضاً الجاهيّ المُستحبّ براءة بزو بعد الحر حدث حدث بلان بلال ردي الآن كرسوله بيشكو سكتة سكتة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل كعدن كد شرّا يعني إيش نفاذ ليك دني رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين فما أصاب حدث قط إلا سوالت عندها في خالد بهذا, بهذا بهذا. ده الروايات بعد الروايتين والمادة ما أذنبت قط يمكن من جناني نك هذا ماجا برشيش ترك هذا مات خدم. الروايات صحيحة صحيح ما أذنتوا صحيح ما أذنتوا ده نذب. امام احمد کی روایت هست تصریف شده ما از ما از بنتو شده ما از نبتو میگه بلاواللہعن من هیچ وقت نماز نکندم مگر پوشش سرش من هیچ حجوز نکردم مگر پوشش سرش نماز خوندم و هیچ دچار هیچ حادثی نشدم وقد فاجا نکردم، مگر اینکه بدت قد فاجتا گرفتم جوگر یک شخصی نمی شاید به شما یست دلال بکنه. اینجا, اینجا بلاد رضی الله عنه بلاد نبر رباح اومد اینکه اجتهادی از کلش کرد و برای هر حدثی برای هر حدثی برای هر نمازی موضوع گرفت. خب یک شخصی از ما میاد اجتهاد میکنه به فرض مثلا نهی من برای خودم بعد از هر نماز ده بار خلوالله میگم. بایا جائزه یا نفر؟ خیر جائزه. چون در اینجا فعل بلان حجز نبود تا اینکه بحث وحط کرد چون بحث تعییدش کرده مقابلش داریم اگر نه مقابلش ندرسیم تصویب تخلیرش میکنم اما به از چیزی که باید دلقق دلقق بکنی. درش و اونم اینکه انسان از خودش یک عبادتی نیاره و بلال بلالم اگر این کاری کرده حتما اجازه از شعر داشته و یک اصلی برای خودش داشته بیچینی فری را کرده و اشتحالی کرده البدر صلى الله عنه تناول تأييدهم كنا أجمل جههايكم المتحبة برئه حرمات حديث عن عبد الرحمن بن مسعود الأول أن على عند كل صلاة بوضوء وبوضوء أو مع كل صلاة مع كل وضوء سواك والأخر عشاء الآخرة إلى كل الليل فاس بنصي إن حديث أجر رسم جرال مشاكل <سؤال> نبوء من بيشون بيقف تكبري حرمات بوجو بجيران المتحبة پس از حمل مئید، پس از حمل مئید به حديث رسول الله در نفس احمد من قصد لمئیدم فلیاغ تسل و من حمله و فلیت وضع اینجا رب باست احبابه حسن که امره به دلیل این خیلی از هم هم روح رسول الله تعالیم حمل جنازه میکردن ولی تجديد وزو نمیکردن کسی که مئید را شست، غصد داد، غصد انجام بده و کسی که حملش کرد پس وزو بگیره از اون جایی که بشه. برای شخصی که جنبه میخواد بخوابه شب باش دیدی که جنوبه یا بعد از نزدیکی مثلا این شخص میخواد بخوابه بهترین کاری که باید بکنه غسل انجام بده اگر نتونست غضو بگیره اگر نتونست همونطور تو خلاصه ما انجام دادن دستش به دیوار زدن و تیمم کردن بعد خوابیدن که انسان جنبه اخارث نخوابه از جمله جاهایی که مستحب که تکلیف توفیق پیدا کرد دو تا کرد نزدیکی که با این خاانش خو به پیش خاان دیگری نزدیکی بکنه بعد از هر نزدیکیقر انجام بده اگر نس مستح کهتی وجودو انجام بده نتونست طیم ممالفق نکنم که نتونونها نزدیکی میتونه بکنه دیگه وجودو گرفته بم دیگه برایش تخت نباشه جمله جا هایی که مستحبه برای اون وجودو گرفت انسانی که جنوب میخواد غذا بخوره ودليل حديثي در نظر اما مسلم دار امكاننا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنوبا فأراد أن يأكل أو ينام توضع وضوء وضوءه لصلاة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص غذاب وقره يبقى خوابه وزومي يرفت همون طور كبراه نماز وزومي يرفت أزم لجهائي كمسحب بباش وزومي يرفت بشه بعدا استفراغه ساني كاستفراغ ممكنه بدت أنو زو ميقر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل ممتلئ ذي ذرّين بصحه نزل صحيح أن رسولنا أبقى فأفطر فتوضأ فلاقيت في ما ستأكل حلي. يكى رسول استفراغ ميكون بعد الاستفراغش بزو أن رسولنا أبقى فأفطر فتوضأ. هذا ظاهرين كر زو ميقر حتما. استفراغ بعد. غذا میخوره بعد از اون روزه میگیره از اون وجاهاتی که الله دمبره حث تمشینین میگه فتبضاف فلقيت بنا في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال صدق انا سببت له وضوءه انا سببت له وضوءه میگه منام اب رو داشت تخیفتن بعد از اون گوزه گرفتن بعد از اون جاهایی که مستحب قبل از خوابیدن حديث من خليج عرب حديث برابن عادت الناظم أبو فري إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اتجع على شخص الأيمن ثم قال اللهم ما سمت وجهي لك ووجعت ظهري إليك, إليك آخر حديث وفضلت أبو الطامري إليك آخر كفهمة حفظتي حفظتي خفينا مازج ملجهايك مستحب برجل تقرفته بشيء الله قبل ذيك ما درب بوجوزه ببني بحثنا وقفز وجوزنا بكوني ما ب. بریم به بحث سنجا در حفی و اندر شما تا حفی و اندر بحث نوخوز وزو آخری مبحثمون چه چی چیزهای وزو رو میشکنه اولا قضای حاجت حالا چه مدهوش چه ادرارش و قضا غیر از قضای حاجت خواب که در یک حدیث اومده که در نظر ما محمد داریم حدیث صفوان منو می کنن کنن معرساته ی امورا ان لانا زا ایام الا من جنابت ولکن من غائط و بول و نوم می کنن مگر برای جنابت اگر می شودیم اونو می در غیر این صورت اگر قضای حاجت میکردیم حالا چه مدروش و چه ادرارش و چه میخوابیدیم دیگه بعد از اون روی اون خوفمون مست میکردیم پس هر تاشون قضای حاجت از هر دو طرف و خواب جوز نواقض بودمون این ستا چارومیش بیرون رفتن از شکم که یکی از از خواب شکریت در نظر رسول الله علیه و وسلم که من وقتی که در نماز ایستادم حس یه چیزی از شکمم خارج میشه مثلا صوتش کنم لا ينفث او لا ينصرف حتی یسمع صوتا او دریح هست کسی این چیزا احساسی که از شکمش خارج شده تا وقتی که صدای نشیده یا بویی به بینی نش نخودا نمازش مش باطل نکنه وسواس نشه پنجمیش دست زدن به شرمگاه خصوصا با شعله جمع به دو تا وقتی صحابی میگه در نمازام دست دوراتم میگیرم چیکار بکنم میگن رسول انما هو بعض من یک تکیه یات بدنته ولی که در حدیث دیگر داریم در حدیث بصره بن صفوان میگه اگر چنین گوسه تن فراهمند اذا مس احدكم که فليتوضئ كذکرش تناسلیش دست گرفت تجدید وجود بکنه الله جان بین ادله انسان اگر خوف حوادث نبوده در اشق روز اشکاننده ولی که اگر به سهوت معمولا با شهوت هستند قسم در قصدند این دست گرفتن به ناقض بودن و به باطل کردن وضون از ذکر این حالت البته که گفتم این یکی از مسائل خلافی شدید هست در جمع بین دو تعادله این یکی از مسائل جمعه که ما این دو حدیث رو با هم جمعه باید وقتی که واسطه نماز معامله نیست دست گرفتن خود همین رسول گفتن که تش صل الله علیه السلام. یک تیک از بدنته لیکن در اینجا چون در بحث نقل در بحثی که افضل اینه که باشه هفت با باشه رسول فرمودن اذا, اح... اذا مست احضکون ذکره و فلیت به الله کسی, که... کسی که از شما دست ذکرش کرده گذور بگیره از اون رو چیزهایی که گذور رو میشکنه و باطل میسرده خوردن گوشت، شطوره که صحابه سوال کردن ما گشت گزفند میکنیم چه کار بکنیم؟ تجید گذور بکنیم رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که چی؟ خ تو چه کار کنن قالا نه درودم بله ما دیگه خودمون اجازه نمیدیم که رسول الله بگن بله بوزو بگیریم در مقابله گوششو تو فردن گوششو گفتن آری بله ما دیگه بگیم نه نه لازم نیست سنت نه مستحبه ما دیگه لفظ و دوران ها دیگه نباید داشته باشیم چون گفتن بگیرید ما میگیم سمعنا و اطاعنا از جمله چیزهایی که بزرغامیش کنه و باطل میسازد خارج شدن مذی و میگه علی رضی الله عنه میگه یک چون رجلا مذئا فامرت رجل ان يسال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ابنته فسال قال توض وقت الذكره میگه چون علی رضی الله عنه میگه چون دختر قیام بدر خانیم منبوت و منم شخص مذی بود مذی من خارج میشد روم نشه که راش سوال بکنم شخص دیگری دست رو بشینه برای سوال بکنه و رسول الله صلی الله جواب بدهن وزو بگیر و اون حالتت را که ازش مز خارج شده بشورد دوتا چیز اشتن باز یکی این که مز و بعد نجسته و دو با من این که واجبه که اون شخص بعد از این حالت اون خدمت را بشوره و وزو هم بگیره از جمله چیزهایی که وزو را خون هست کسی کلا خانومی که استحاضه هست فهمیده که استحاضه هست هر وقت که شد برای هر نماز چون همیشه ازش میاد برای هر نماز اون قسمت را بشوره مثل کسی که سلسل بود داره مثل یا مثل کسی, کسی که مزد میشه اون قسمت را بشوره و برای هر نمازی وزو میگیره این خلاصه بحث نواخذ وزو داره وزو را هم بستیم تا هفته یه که بحث آداب استنجه را خواهیم داشت کسی, کسی که تو اینجا سوال نداره سبحانك الله وحمد لله سبحان الله